با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان تلویزیون رنگین کمان بخش شیشم گفتار در مورد کسری رو شروع می‌کنم در آخر بخش پنجم به اینجا رسیدیم که کسری رو وزارت عدلیه ازش خواست که برای عضو استیناف مازندران حرکت کنه بره ساری و در اونجا رئیس دایره استیناف بشه و روز بیست 29 شهری بر 1300 حرکت کرد به سوی مازندران و گفتیم که دو تا اسب گرفت از یک کارمون یکی رو وسایل منزلشو گذاشت و یکی دیگه خودش سوار شد و آمد تا فیروز گفت در فیروزکوه قضاخان رضاخان تمام اسبای کاربان ازشون گرفتن میرفتن برای جنگ با امیرمعید معید سوادکوخی رزاخان تازه از راه رسیده کودتا تارو کرده یواش شواش داره سوار حضرت میشه و داره امنیت رو در مملکت برقرار میکنه به یکی از کارهای اولیشت م... درگیری با امیر معید است خب کسروی میمونه در فیروزگو بدون وسائل بالاخره یک کاروان دیگر رو میبینه وسائلش رو یک خاطری یا عصبی کرایه میکنه در این کاروان وسایل منزلش رو میذاره تو اون و با کاروان میفرسته ساری و خودش با پای پیاده از به را میفته میرساری باز گفتیم که در راه پول نداشت یه گیاهان رو خورد برگ گیاهان رو میخورد زمین خیس بود و باطلاقی بود کفشاش از رفته بود پاره شده بود در کارونسراها در کافه ها میشسته کفشاش میشسته میدوخته به هر حال کسوی میرسه به ساری مدت چهار ماه کسوی در ساری بود و, ریاست, و عضو... ریاست سیناف رو بخته داشت و در این مدت چهار ماه پس از چهار ماه بودجه عدلیه برای برقراری اداری استیناف تمام میشه و کستفی دوباره مجبور میشه برگرده تیر در این مدت چهار ماه ضمن زمن کارهای اداریش به دو کار میپردازه اولیش این بود که گفتیم در گذشتم گفتیم هر موقع فرصت می کرد به کارهای علمی می پرداخت. و اینجا هم میدونیم که کری وقتی وارد ساری میشه متوجه نیم زبان میشه اونجا که نیم خودش میگه نیم زبان یم لهجه شروع میکنه درباره نیم زبان و همین لکه تحقیق کردن و خواهیم دید که بعدا این زبان رو به صورت این تحقیق رو به صورت یک نوشته در میاره به زبان عربی و میفرسته منتشر میشه. خواهیم بسید. این رو از خوانم کرد. یکی دیگه از کارهای مهم مکسدی این بود که به هر کجا که به ادوان معمور و معموریت میرفت محیط آنجا رو بررسی میکرد. بررسی میدانی بررسی اجتماعی بررسی جامعه شناختی بررسی تاریخی بررسی فرهنگی ما همین الان داریم به این متوجه میشیم که اگر این مرد نبود ما در اون دوران هیچ آشنایی هیچ اطلاعی از وضع مناطقی که کسلی رفته نداشتیم خوشبختانه خاطرات کسبی تنها خاطرات زندگیش نیست خاطرات محیطی که در اونجا زندگی میکرد هم هست و گفتیم که اغلب فساد جامعه رو به قلم میکشید و میوبرد رو و در همین ساری هم مطفقیم مردم ساری گداپرورند خودش در خاطراتش مینویسه که روزی در میدان محلی را دیدم که از زنی هیزم میخرد و بر سر یک عباسی با او چانه میزنند و چون از او در گذشت به درویشی پول داد که شدی دوام نمیاره جلو میره میرسه به این آدم به این آقا که داشته چانه میزده و ازش می پرسه چرا به این پول دادی به این گدا پول دادی میگه برگشت گفت پس اینها از کجا بخورند میگه گفتم پس چرا این اندیشه را درباره آن زن کارگر نکردی و آن همه چانه زدی به خاطر یک اسی میگه پاسخ ندارت رو بنابراین اونچه که روشنه متوجه میشیم که کسری داره معضلعات اجتماعی رو هم همزمان با نوشتن خاطراتش بیان میکنه همچنین در مازندران علاوه بر بررسی نیم زبان مازندرانی یه مطلبی نوشت در مورد زبان ترکی در ایران تمام مطالبش رو هم به عربی می برای اینکه که می فرسته در کشورهای عربی در سوریه یا مز منتشر بشه مطلبی می نمیسه اللغت ترکیه فی ایران واجه ترکی در ایران و این را به ماهنامه الارفان در سوریه می فرسته که اونجا چاپ می بعد و همونطور کس کردم که اصلایی از چهار ماه سکونت در ساری که البته دستش پر اومد یکی لحشه مازندرانی و دیگری درباره زبان ترکی بست کرده در این مدت چهار ماه او رو میخوان به تهران و دایره استیناف رو میبندن کسیمی در چهارده فرپردین 1301 رخت سفر بست و بسائل منزلشام برداشت رکش تهران خب یادون باشه که ما همراه با کسری و زندگانش رسیدیم به 1301 کسری به مدت یک ماه و نیم در تهران هم بیکار بود وقتی کسری بیکاره بی پول در آن تاریخ کارمزدی بودن کارمندان یعنی یک کارمندی اگر کار میکرد صاحب پول میشد بهش پول میدادم اگر کار نمیکرد پولم نداشت کسری وقتی پول نداره اندوخته که نداره در ماسی چه زندگی میکنه یک ماه اونیم در اونجا بیکار بود در خرداد ماه سال 1301 کسری رو دوباره وزارت ادلیه به عنوان باسرست به ادلیه دماوند فرستاد این مطلب رو بنده اشاره کنم که از این به بعد خواهیم دید تا زمانی که کسری در عدیه خدمت میکرد هر کجا هر شهر جل لاین حلی داشت کسری رو میفرست داد اونجا و میرفت این مشکل رو حل میکرد خواهیم دید در مناتق دیگر هم همین کارها رو کرد دماغند مشکلی داشت مشکل عبارت از این بود که گویا حاکم دماغند والی دماغند برادر ناتنی رضاخان بوده رضاخان هنوز راه نشده تا بگیم شد. در اون تاریخ خانه راخانه و چون برادر ناتنی رضاخانه از ادلیه مسئولان وزارت ادلی جرئت نمیکنند با این برخورد کنن چه برخوردی این آدم این والی دماوند منشی ادلیگر رو کوتاک شده و سوار قاطر کرده از شهر اخراج نموده و این رو باید دللیه بدونه ولی جرات نمیکنه کسوی رو صدا می کند دا اون معمول میکنه ااب او کن بررسی بکن ببین چه اتفاقی افتاده کپسید فردا یا روز راه میفته پس از اینکه دماوند میرسه و مسئولیت خودش و معمولیت خودش رو شروع میکنه متوجه میشه که نه تنها حاکم دماوند کار بدی نکرده بلکه منشی دادگاه آدم فاسدی بوده خب حالا من کنم که چوب زدن از نظر بنده کار خیلی بدیه و تحقیر انسان کار خیلی بدی، انسان میتونه مقصر باشه ولی اون کرامت انسانی رو باید رعایت کرد به هر انسانی که ما صدمه میزنیم به انسانیت صدمه میزنیم ولی در اون تاریخ ما میدونیم که مسئله از این کارها گذشته بود شکنجه میکردن میکشتن مطلب کرامت انسانی به اون که امروز ما مطرح میکنیم وجود نداشت و وقتی بررسی میکنه میبینه که این آقای مرشی دادگاه با یکی از اعضای دادگستری دماغند به نام سید ابوالهاشم که امین صلح عدلیه هم بوده هم کار میتونه امین... سید عبالحاشم طلبهی بوده مرسیه میخونده روزه میخونده این رو بودن در ادلیه ولی که کار بکنه خدمت بکنه میگه ولی از خدمت سرش نمیشه که هیچ بی سواد بود که هیچ بلکه رشبه خورم بود فاسدم بود زمن بررسیاش به این چه میرسه که این آقای امین صلح میگه که منشی دادگاه ما دوتا با هم استخدام شدیم و قرارمون بر این بود که و ها رو با هم تقسیم کنیم این آقا رشبه رو میگرفت و با من تقسیم نمیکرد. الان آقای بران کستنی بررسی میکنه متوجه میشه که این مرشی داد این آقای سد ابل هاشه به قدری فاسد بوده که میگه هر مراجعی که میرفته به ادنگه به این مراجعه میگفته که شما منو دعوت کنید به خونتون برای یک شام تا من بیام اونجا کارهای شما رو ریست راست بکنم خب کستنی حق میده به والی و این آقای ثنا ابوالهاشم رو هم از کار بیکار می‌سازه و از دماوند اخراج می‌کنه می‌فرسته به تهران تا به تکلیفش رسیدگی کنه بشه. بعد می, می همون طور که از کردم در این مدتی که در دماونده هم چون ساری هم تبریز بعد خواهیم دید هم زنجان همچون چون خوزستان وضعیت اجتماعی بررسی میکرد کرد کار جامعه شناسی انجام میداد بدون این که عملا جامعه شناس باشه. کار میدانی انجام میداد. در همین دماوند هم متوجه مشکلات اجتماعی اونجا میشه و یکی از بدبختی های جامعه رو رو میکنه بدبختی جامعه ای بوده که میگه مردم به شدت سیاه فکرند، خرافاتیند و باز هم در میش پرستند، گدا پرستند خودش در خاطراتش بیان میکنه من ترجیح میدم به خاطراتش مراجعه کنم تا این اندگان خیلی راحت متفتیه بشن که جنگیان چی بوده زبان مند قاسره در مقابل خلم کسری کسری می که روزی از بازار می سیگردی را دیدم بلند بالا و چهار شانه دستاری سبز, دستاری سبز و کوچک به سر بسته رختی نزدیک به رخت افسران به تن کرده شمشیری با دسته سیمین از کمر آویخته شلاقی با دسته سیمین به دست گرفته با یک ناز و گردن فرازی از پیش روی ما راه می پیدید من به اون می و می دیدم به کسی رسید و از پشت سر شلاخ به دوش اوزد را می رفته. یکی ایتوناش می بوده نهای درویش شلاخ که دستش بوده با دستی هم همونطور که دستایی گفت از پشت بگی شلاخ می زده آن مرد جست و چون بازگشت سید را دید. خم شده دستش را بوسید و پولی را که ندانستم کرتومان بود درآورده و به اون داد دادی دست بوسید من تصور میکنم که در مملکت ما یک عمل خیلی زشتی است از دوحه همون اسلام باقی مونده آقایون بزرگان مملکت ما که همه هم دستار میبندن در دیدار ها دستشون رو دراز میکنن تا دیگران دستشون رو بگوزن به صورت یک سنت و یک فرهنگ برای مردم و مادر آمده حال یکی دست مادرش رو می مادر عزیزه دست پدرش رو می پدر عزیزه ولی دست ملا رو گوزیدن یا دست دیگه ای رو گوزیدن اقارت انسانیت خوچی شمولنه هر انسانیت شعور این مرد اونجا بوده شلاق خورده برگشته این آدم رو دستشو رو بوسیده و بهش پور داده کسانی <تصفيق> ادامه میده. میگه من دیدم چیستان در چیستان است اونسو یک کیست چرا آن مرد را شلاغ زد چرا اون به, به جای پرخاش دست او را چرا پور در به او را مهمورت دیگه که, که پشت سرم بود چون منو دید شگفت زده شده خودش رو به من رسند و گفت این آقا نظر کرده ی حضرت عباس توجه به این آقا نظر کرده یه حضرت عباس است اینها آقایانی هستند همه هم ساله تابستان می و در بیرون شهر چادر می و به مردم شلاق می زنن. هر کسی از دست ایشان تا تال بلا نخواهد دید بدبختی ما جامعه ما ببینید در کجا بود یکی از موارد زشت جامعه ما هم خرافاتی بود حالا اگر ما بررسی کنیم علتی که جامعه ما اغب مونده است از غافله تمدن یکی از عوامل مهم ما خرافاتی هستیم ما تاریج فکر هستیم نمونش در اینجاست و جاهای دیگه ما میریم به ایوروهر پول میدازیم ما میریم در حرمها پول میدازیم ما امامزاده میسازیم حالا خانم رزید به امامزاده در بخشهای بعدی باز هم کسری قنی از این بابت که چه جاهایی رو ما مردم امامزاده دوش کرده بودیم میرسید کسری ادامه میده من به او پاسخی ندادم و چندان و خشمنات شدم که میخواستم بروم و شلاغ را از دست آن مردک بگیرم و تا به توانم به سر و رویش بگیرم با این حال و با این خش به دادگاه رفتم مینویسه پس از نیم ساعت از دور دیدم آقا سید با یکی دیگر همچون خودش می آمدند. و از در عاد پا به درون گذارند من دانستم که میآیند به من شلاق بزنم و پولی بگیرم این بود همون که نزدیک شدند نهیب زده گفتم چه میگویید آنان تکانی به خود دادم و یکی دست برد و از بهش کاخذی درآوتداد به دست من بار کردم دیدم با مارک و مهر اداره حدمرانی مازندران است. و خدایان سر راه دستور داده که چون آقا سید ابراهیم خراسانی نظر کرده که حضرت عبالفعز علیه السلام و آزم آن صفحات می باشد احترام و مساعدت از احترام و مساعدت فروگذاری نکنید آدم نمی طالب بخندی و یا کنه مسخره کنه یا به حال این ملت بشینه زار زار گریه کنه آدم گدای بی سر و پایی رو یک حاکم یک شهرستان حاکم مازندران رو دست خط می با مخر حکومتی که این آقا نظر کرده ی حضرت عبال می سر راهش خدمت کنید تا به شلاقش بزنه به سر این اون تا یک سال این آدم ها بلا و مصیبت نبینن چه مصیبتی داریم ما مردم کشورمان. بگذریم در شگفت شدم که چشیم ادامه میده در شگفت شدم که چرا این نوشته را به دست گدایی دادند چون خواندم و سر بلند گردانیدم کاغذ دیگری داد و دیدم از خودمران آمد است. اون از خودمران نازندران. اینم از آمد. باز دیگری داد از وزیر عدلی مشاور سلطانه، باز دیگری داد دیدم از نخست وزیر قبام سلطنه است. همچنان پیاپی پی کاغذ به دست من میداد. ببینید از سر تاپا در تاریکی زندگی می کردیم. به صلاح حکام ولایات همه خرافی همه بدبخت وزیر بزرای ما آقای مشاور سلطن وزیر عدلیه وزیر عدلیه وزارت وزارت عدلیه مهم مهمیه. چگونه کاغذ به دست یک گدام میده که به این احترام بذارید حکم وزارت عدلیه حکم قانونه ما کجا زندگی کردیم؟ حال میرسیم به قبام سلطنه تا این تاریخ هممون تصور میکردیم قوام سلطنه یک انسان مدرن و روشن فکر و مفیدیه. ولی ببینید در چه حالتی بودن اینا چه جوری بودن اینا بعد نتیجه خوبی است اونا که به دنبال اقعبوندگی جامعه ما میگردن یکی از مهمترین مسائلش همین خرافات است که همراه با این آهایون از همین دورهی صفحه بیه. قبل از صفحه بیه از اونیز که این وجود به وجود اومدند این خلافات هم همراهشون به وجود اومده جامعه ما رو گرفته متاسفاده کسری ادامه میده من به خشمم افسودم گفتم اینها چیز که به دست من میدهی به معمولین دستور دادم و گفتم بگیرید اینا را گفتن ما را بگیرم گفتم آری شما را بگیرند تا معمورین پیش یکی گریخت ولی یکی دیگر را گرفتند و گفتم به اتاقی انداخته و درش را قفل کردند کمی نگزش دیدم نمایندگانی از خود از رئیس دارایی آمدن و چنین پیام آوردند اینها سادات صحیح و نصبن. مستجاب و دفن. صلاح نیست از شما آزار ببینند شما جوانید، از نفرین ایشان بترسید همچنان کسانی از بزرگان دماغن برای میانجیگری آمدند توجب برمایی سادات سهی خون ما متاسفانه تعریف سید رو نمیتونیم نمیخواییم لگیم سید به عنوان نجار پرستیه سید یعنی از ما نیست سید یعنی جزوی ایرانیانیست از تبار بالای عرابه ما خودمونو تحقیر میکنیم با احترام به این سیدها کسی ادامه میده گفتم اینها این ولکت و کلاهبردارند و من باید آنها را به بازپرسی کشم و کلفر دهم و برای خاموشگردانیدن ایشان این کسایی که اومدن برای میانکیگری دستور دادم اون رو آوردن اون که که گرفته بوده کرده بوده توی اتاق و برای باز پرسی نشندم پرسش کردیم در این زمینه تو چرا به مردم شلاق میزنی؟ نظر کرده یه حضرت عباس کنیچه نخوض کردن کشی میکرد و جوابی نمیداد ولی کم کم نرم شد و این بار به چابلوسی پرداخت و چونیم گفت اینها از پدران ما رسیده ما هیچ نمیدانیم چرا شلاق میزنیم نمیدانیم نظر کرده حضرت عباس چه معنا دارد که اون آن روز آن درویش رو کرد و ادامه میدهد که گفتران که همه مردم داستان ها از آنها سوده و میگفتن زیادی از آنها میگفتند که اینان در میان خودشان کولیوار زندگی میکنن زنها در میانشان همه گانیست اگر در یک جا دختری دیدند از گزدیدن آن باک ندارند در فیرامون چادرهاشون عصب با لگام زرین و سیمین میدوندند طبیعی است عصبیشون لگامش زرین میشه با این پولهای مفتومد جانی که از رست تا تا همه بهشان میدادند عصبش هم باید لگامش زرین باشه دیگه پولهایی بسیار با خود میدارند و ادامه میدهد که این همه فیصاد را در آنها بینند و باز نظر کرده شون میشنسند که در ادامه این مطلب میگه که من آن زمان کمان بوده اون زمان سی و یک سالشه در این تاریخ که من دارم صحبت می کنم من آن زمان نمیدانستم باید نمیدانم که در این کشور کوشش هایی هست که این گونه رفوایی های پست رواجش بیشتر باشد وزمیان نرود چنان که مانند همین نوشته ها را به تازگی در اون طرف می سود از ساعد مراقعی دیدیم اینم یک نخوص وزیر دیگر من بودند چه کسایی کشور کاره اداره می کرد؟ چنان که مانند همین نوشته ها را به تازگی از ساعد مراقعی دیدیم که با مهر مارک نخوص وزیری به دست رسید. این مارک رو به دست سید گدایی به نام سید محمد علی داده که به دست افتاده بود و در یکی از نوزنامه ها به چاپ رسید برقا کم از معایت کسویه کسوی خب اعضا گفتیم دو گفتیم مطلب میکنه دیگه یکی دیگم کار مطالعاتیشه کسوی در ساعت بیکاریش در مورد تاریخ آذربایجان شروع به مطلب نویسی کرد و این تا... متا... به صورت مطلبی مینوشت به صورت مقاله مینوشت به زبان عربی میفرستاد نشریات عربی در کشورهای عربی متشد میکردن و به گمان من تاریخ ده ساله غازربایجان را از این تاریخ کسری شروع کرده فرصت بخش ششم بنده تمام شده امیدوارم که در بخش آینده بتوانیم مطالب دیگری از این کسری این مرد بزرگ بیان کنیم Toen ze toen begrepen.